مکرر کردن مریدان که خلوت را بشکن جمله گفتنده دای حکیم رخن جو این فریب و این جفا با ما مگو چارپا را قدر طاقت بارنه بر ضعیفان قدر قوت کارنه دانه هر مرغ اندازه‌ای وی است طعمه هر مرغ انجیری که است طفل را گر نان دهی بر جای شیر طفل مسکین را از آن نان مرده چونکه چون که دندانها برارد بعد از آن هم به خود گردد دلش جویای نان مرق پر چون پرران شود لقمه هر گربه دران در شود چون برارتتر تر بپرد او بخواد، بی تکلف بی سفیر نیک و بد دیو را نطق تو خاموش می کند گوش ما را گفته تو هش می کند گوش ما هوش است چون گویا توی خشک ما بهر است چون دریا توی با تو ما را خاک، بهتر از فلک، ای سما که از تو منور تا سمک، بی تو ما را بر فلک تاریکی است، با تو ای ماه این فلک باری که است، صورت رفعت بود افلاک را، معنی رفعت روان پاک را، صورت رفعت برای جسم هاست، جسم ها در پیش معنی اسم هاست.